اللهم الرجيم و الله الرحمن ورحمتكم رب ورحمتكم وبرکتكم ورحمتكم وبرکتكم ورحمتكم وبرکتكم ورحمتكم الله مکاسر مرگوم شیخ حفظ و کتب زلال عنوان زده بودن در عنوان در بحث های خودتی از شد که مرگوم شیخ حالا روش ما اولا کلمات شیخ و بعضی از تعلیقاتی که دیگران محاصرین یا بعضی شیخ بریشون کردن اون وقت در محله سوامیم به جذور مسئله این تحلیل تحقیق نهایی مسئله از کردیم مرمون شیخ مطالبشون رو آوردن و استدلالات شونزه کردن و در این بحث ادهی از مطالب رو قرار داده روشن بشه که کجاها مثلا نقص هست نیست و چیه مرمون شیخ بعد از طرف عنوان حفظت و زلال، کلمات ایشان البته خوبی یه مقدار طولانی شده نسبت به این بحث و یک مقدار هم مثلا انسجام نیست حالا اگر بخوان مثلا مکاسر رو به این چاپهای جدید عنوان بدن خودشون بعد میشه به عنوانی برش ذکر کرد برای خود همین مباحثی رو که ایشون رو بودن. برای اینکه باز یک روشی که ما از قدیم در تحلیل تاریخی مطالب پیشی هم خود انسان اون تحلیل تاریخی رو انجام بده هم این قدرت رو پیدا بکنه که کلام دیگران رو بتونه تحلیل بکنه مثلا با مثال همین مطالبی رو که الان شیخ در اینجا فرمودن که مقدارم حکنده است این رو اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم تجریه بکنیم جدا بکنیم و ببینیم چه مقداری شیخ در این زمینه ها کار انجام داده این مثلا اون و چه مقدار نقد موجوده کاملا واضح میشه خب مثلا ما بیام بگیم که در این جور مسئله یک در اساسش بخش اینه که باید از روایات این در اول از آیات و بعد از روایات استفاده کن و به لحاظ روایات هم تحلیل تاریخی داد که از زمان فهرنبر بوده از زمان صاحبه بوده از زمان صاحبه این بوده فقها بوده این روشن بشه که این چطور سریر خودش رو تقیی کرد دو این یک مهور محور آیات و روایات سه دو مهور تلقی اصحاب نسبت به این آیات و روایات و نقل کلمات اصحاب و مقداری که اصحاب او تمند توجه کرده مهور سبون است, است که برمیگرده به جهات خارجی غیر از حالا کتاب و سنن عدله اطلاقات دیگری اگر اصلا ممکن است در اینجا زده شد محور بعدی مربوط میشه به تفریعاتی که برمیگرده به موضوع یا به حکم مثلا به موضوع مراده از حفظ چیه آیا مراده از حفظ نگه داشتن تو اتاقه یا مراده از حفظ انسان بخونه تا حفظشو کنه مراده از حفظ کنایت خیلی فروچه تو انسان یه چیزی که میخوره نگه میداره یا مراده از حفظ مراده جدی عدم اطلافه یعنی اگر انسان یک وظیفه داره که اطلاف بکنه کتاب رو که اگر اطلاف نکرد حفظه اصلی تطبیقاتی و و کذال کتب آیا مراد خصوص کتب یا شامل به استرا مثل نوار و ویدیو و این جور میشه یا سر کلمه زلال به نسبت کلمه زلال که آیا مراد از زلال چیزهایی که باطله حتی ممکن است یک داستان های خیالی باشه مثل این داستانش کلی کیجوگزن فرانسوی هست نمی‌شه تفر بخوره ایمونیکورن فلا یک داستان خیالی باشه که واقعیت نداره اما یک لطافتی داره، ظرافتی داره، بعضی جاات علمی داره، و این که دروب هم هست، اساساً دروغه. یک کتابی هست، یک دوست کتاب هست، مالی این دیگه معروفه. من چگون بر و تشویش نمی‌کنم. اجازه بکنم. خیلی جسوران می‌کنه که این توو تو زندان کی معروفه تمام اینا جعلی خودشه، واقعیت نداره. اما خب این جل رو فرق کرده برای جهات آموزشی و برای جهات تربیتی آیا مراد از زلال اینه یا کتاب‌هایی که توی فرس قضايا ملانص الدین داره چون خود ملانص الدین خارجی نثره چطور توی ایاق خب آیا مثلا خریدن کتاب فرس قضايا ملانص الدین مثلا مجرد این که فی نفسه باشی یا در عربی مقامات حریری اگر آن مقامات حریری باشه خب همش قضايا دیگه همه مقاماتی که داره و تمام قصه خیالیه کدومش واقعیت نیست خیلی هم متن ادبی بسیار زیبایی صورت گرفته از ادبی مکلف و تکلف و سند فرع جناس و سجع و قافیه و انصافا یک متن عربی بسیار سنگینه متن مقامات حریری کردن انسابرتن در روزها ها وقت متول و مغنی خونده میشد و برای نوشته شده جزیی کتب متادرسی بود که اساتید ادب مثل محمود و اول آشاژ جواد نیشابوری تدریس می‌کردند آیا زلال شامل اینها میشه شامل کتب سماوی میشه شامل کتب حدیث اهل سنت میشه سوال به شامل کتب و اصول باطل و علم نجارو این بحثی بوده که شده آقا مشی گوروه شه و آقا مشی شه که باهی شیخ باهی مشی گوروه معروف کمال کیل و مرحوم شیخ باهی بله بله چه نامناف اینا داره حلوا و چیزین حلوا حلوا و فلان اما موش به معروف اون که کتاب است و شعر است و معروفه که مالا عابد زاکانی است که چرا هم خودم خوندم چیزی داره با اکثر چاپش گفت اکثر با شوخی بود این هم از این قبیله مشابه او در به شوخی کتاب کلسوننده مرحوم آقای علی نواسی جوان یا پسرش آصف حسین خونساری که از طرزشان خصوصان تألیف یکی از ایناست کتاب قشنگیه یک ده احکام مثلا زن در چند نفر مرد محرماتی که با سر کوچکی فایده بدین احکام اینجوری داره اسم کتابمون میشه کلسوننده به جوک و شوخی نوشته همه چه صلاح واقه درazem کیف ماکان از این قبیل ولی ما آیا اینها تمام جزء جز کتب زلال مثلا کتاب هایی که خدای نکرده الفاظ قبیح دارن ولو حق باشن چون ممکنه حقا باشن الفاظ قبیه آیا جز کتب زلال حساب میشن که درگه اسمی مخوام بدارن علایه یه بحث هم راجع به این بخشه اینها بیشتر تفریعات موضوعیه یک بخش دیگر هم برمیگرده به فقه به جوان به فقهیش در جوان فریش بحث مهمش یا تفصیل یا عدم تفحیق به این بحث وضعی و تکیفیه. آیا همچنان که مثلا حضر کتب زلال حرامه آیا این حرمت منشأ میشه که از مالیت هم خارج بشن اصلا مال نباشه حالا کتب زلال بر هر معنایی که معنا کردیم مال نباشه یا اگر بحث دیگریش که بحث تبعض سفقه یک کتابیست که حالا به هر معنایی که اعتبار کردیم نصفه زلاله نصفه زلال نیست این فروخت آیا قائل به طبعه از سفرقه میشیم این معنا که بی نسبت به اون نسبت قسمتی که زلاله باطله نسبت به اون قسمتی که زلال نیست درسته دقیق کردیم این بحث مربوطه به بخش حکم وضعی بخش تنگینه است از بحثای دیگه هم داره که مثلا حفظ مراده از حفظ آیا فقط حفظ و نگهداری کتبه یا مراده از اون اسپنتاخه مراده از اون نوشتن مثلا یک کسی مثلا پول میگیره پس هم بقول اینا کتاب موش و گربه با باید زاکانی های بنیمیشه اسپنتاخه کتاب کتب باسه کتاب زلاله واقعا زلاله موجب به زلالت میشه آیا اخذ اجرت او آیا عمل او حرامه اخذ اجرت او حرامه اجرت داخل در مین که او نمیشه چاپخانه چاپ میکنه حالا مخصول الان تو زمان ما یکی هم در این کتاب صحافی میکنه جل درست میکنه آیا اینها کلن حرام و اضافه برغرمه اجرتی که در مقابل اون میگیره باطله اخذ اجرت در مقابل اونها باطله یا باطلی پس دقیقه بفرمایی مسئله حفظ کتب زلال یک جهات یعنی جهات مختلفی هست و منحوم شیخ قدس الله نفسه منحیس المجموع آلا این من ترحام رو مطرح کردم بیایم ببینیم کار شیخ کار بوده منحیس المجموع کار شیخ انجام دادن اینه در بخش روایت در بخش آیات نظر دو تا آیه معروف سلام گفتن دو تا آیه معروف رو ذهب کردن اش وشن قول زور و الذين ظلو... و این الذين الذين من و این دو آیه رو آورده و خب یک بحث اجمالی کنم نسبت به روایات چون در میخواد من اول کار شیخ رو عرض بکنم نسبت به روایات ایشون دو قسمت از حدیث توحب الهول رو آوردن و یکی از روایت عبدالملک که اینی بله نگاه میکنم در کتب نجون قال احره خطبت در آخرش پرموند آخر خطبت این در روایات این رو آوردن بخش عبارات قدما ایشون عباراتش که خود در مبسوط آورده در بخش غیر به حساب قدما مقداری از عبارات علامه بود تسکره و اینها آورده و جامعه مقاصد و یک مقدار از این عبارات آورده در بخش به اصطلاح حکم عقل به قاعده دفع منکر تمسک فرده که حث نامثل ک دو منکر با دفع منکر کرد یعنی اصلا باید کاری کرد که منکر قلع ماده فساد بشه. این هم در این بخش. راجع به تیات هم راجع به ترییعات موضوعی هم متعرض شدهن. اما در اصل حکم با اینکه قبول کردن میکان اشکال بکنن که زواهر عادله در جای است که بدون موجب زلالته، اما اگر بخوایدیم بگیم حفظ کتب زلال به عنوان حرامه خوب دقت کنیم حالا من تو خونه کتب زلال نگهر میدارم نه اینکه موجب زلالت من نیست اصلا میخوام ردی برشونی میستم نقدی برشونی میستم و استفاده های خیلی خوبی ازش میشه ایشان در اینجا شبه دارن و دریع و یک نکته فنی زریفی رو دارن که تمثب به اطلاق معقد اجماعه این اطلاق معقد اجماع رو برای چیشون تمثل کنه برای اینکه بگه حفظ کتب زرال به عنوانه حرامه خود قد بکنه و الا اگر مسئله یه ترتب مقصده باشه باید اون مقصده رو حساب بکنیم جایی که ترتب میشه حرام جایی که نیمیشه نه ظاهر مالیت هم بحث مالیات بیشون ظاهر خواهده این که مالیات پیدا نمیکنه. در طبع عضو طبقم ظاهرم غالب طبع عضو طبقم طبق میشه این رؤوس مطالبی بود که ما از مرمون شیخ خوندیم و به اصطلاح بررسی شد البته مثل عادت قدیمی ها غالبا غالبا عباراتیشان مجمله اون وقتا عنوان ندارد به سمجده چیگه اگر در این میدونم در این شاپ جدی که از مکاسب کردن برش تیتر زدن خود این محققین کتاب گاهی میزنند. برای اینکه برای مراجعه تر باشه این راجع به این مطلب راجعه در این مسئله از اجایر کاره اینکه محروم سیدی در حاشه خودشون خیلی به تفصیل وارد شدن این برای من ترکیبه ها رو زارن یا حال داشتن حالشون شما ساید. خیلی این مسئله رو محروم سیدی بیش از حد متوقع ایشان به تفصیل در زیر کلمات شیف و مطالبی رو در این چواده نه حالش یہ چون ما بحثون در محرمات تازه اول محرمات این حفظ کتب اوزرا بعد غنا حضرتش بحث کہ حضرت ما شاء الله دی بعد حضرت ما شاء الله این شاء الله خیلی محرمات زیادی بقول عربیان خیلی جدا هنوز جلو زیارت مشکل دارید حالا دا این مسئله احسان من حالشا مساعد نبوده یا نکته‌ای شامل مانع تحریفی شده اصلا دیگه در مکاسب محرمه در این قسمتی بخش محرمات دیگر اصلا متحرز نشو بعد از حفظ کتب اوزرا رفع تبع از در واجبات کلی محرمات یه حاشیه نداره چون اخرش واشیت شد تو همین ردیف کتب وزغل کونا خیلی طولانیه انصافا اگر اونا با کامپیوتر دارن یا مراجع خارجی بخوام اونها یه متخصصی طولانیه یه چی گفته بیارن به علی قبول بکنیم نه خیرن هم وقت شما میارن وقت ما از درازنم می‌خواستم بگم و این احتمال می‌دیدن شد مانعی رازی چیزی ولا خیلی عجیبه از میشان که در همین کتب وزغل تا طولانی صوحتن بقیه اصلا متعرض نشوند به مسائل مثل سهر شعبه خیلی مسئله مهم هست شهر ثابت شده. شده نه احتمالا محفظه همه شده یا بحث نکنه به بعد رخصا تو قسم پنجم عقض اجزت در واضیبات از اون قسم پنجمه ما الان در قسم چهارمی عقض اجزت در محرمات ایشون بعد از این بحث دیگر خونه. تصادفه من هم آی, ای هم اینجا مفصل واضد شده نمیگه از عجبی بکار مرهوم ایروانی هم در ه در اینجا نسبت به بعضی جایدیگه انصافا با تفصیل بیشتری وارد شدن در از این که آه با قدرشون شاید بحث روز بوده مثلا دوز کتب و زلال شاید مثلا باید من که سردر نگیرم که شو شده نسبت به خودشون اما تویشون بعدیرم دارن مرومی روانی بقیه محرمات هم دارن اما توی این بحث نسبت به خودشون زیاد وارد شدن یعنی و بیشترین بحث ها، بیشتر سر حفظ عنوانه یعنی مثلا فرض کنیم در روایات چیزی اضافه نکردن هم بحث روایت تو ابوالاول درست می‌کنه نمی‌کنه آیه درست میکنه همون بحثی رو که مرحوم شیخ مطرح کردن غالبا بحث یه تحلیقاتی زدن یا تعمیمی بعضی از حواشی این دو بزرگوار در این دراساتی که بعضی از معاصرین نوشتن اونجا آمده آ مراجعه کردن من بخوام تمام رو بگم طول می‌کشه ما برای این که یه مقدار مطلب هو المتعارق بین در روش مرغم و استاد رزوان الله تعالی، علیه ایشون یه مقدار مطلب رو جمع و جور کرده هم استاد در این مثباهال فقاه چاپ اول ایشان قدیمی شده من نیم دارم چاپ هست که چاپ جهیدم شده مثباهال فقاه نیست من ندارم در صفحه 254 در جلد 1 تا صفحه به اصطلاح دویست و البته استاد در اینجا به لحاظ عبارات علماء عبارت مربون مفسود و اردن شیخ توصی در مفسود حالا چون ما یکی یکی حالا من دیگه عوشاش باید بارد تحریرم بشیم به لحاظ عبارات ها الان متعرض نمیشم چون میخوام اول کلامات ایشان رو تمام بکنیم بعد میخوایم قبل از مفسود انصافا در کتاب مغنعی شیخ مفیدم آمده در کتاب نهایی شیخ توسی هم آمده به این دو کتاب بناشونه که از تصابه رو از روایات بگیرم اما این عنوان در روایات نداریم من ارز کردم به ذهن بنده حساب و تخصیر اینه ما مهم حالا تو خوبه الانم متعارف شده از علماء بعد از مسخن آی بروجیه دیگه قبلش هم بود ساده مثلا مفتال ترام قبلش بود خود تاب جوال زیاد داره کلمات و ها رو لیکن دیگه آی بروجیه دی مدت ها مطروح شده بود آی بروجیه راه رو اقیق کردن متعرض کلمات می شدن این مطلت که متعرض کلمات و شدن خوبه اما از کردم به نظر ما همراه با تحلیل باشه خوبه به مجرد آوردن مثلا مقوم شیخ این رو در مح توی بحث غنائم آورده به بحث خب این طبیعتش حالا بعد توضیح میده من خواهد میخوام روشن بشه طبیعتش اینه که این بحث از یک فقه حکومتی سرچشمه گرفته طبیعتش اینه دیگه چون غنائم و جنگ مال حکومت بوده طبیعتش هم اینه من ارز کردم بعد از این که حالا فقه نقشته شد سعی شد غیر از نوشتن خود فقر بیاد مسائل حکومتی رو با فقر حل بکنن مثلا کتاب الخراج ابو یوسف رو اگر دیده باشیم اسمش خراجه اما رساله ایز خطاب به هامرشید در اموال بیتلمان که مثلا ما خراج داریم فیع داریم بنیمت داریم زکات داریم خمس داریم اینا موردشون چیه مصبرشون چیه مصرفشون چیه, مصرفشون چیه؟ و بعدها اون چی که اطلاع در دستگاه اجرایی پیدا می این رو نیدن به فوقها اده از اینها ها تدوین شد شد دوز کتاب فقی خیلیشون طبیعتشون طبیعت حکومتیه طبیعت فردی نیست مثلا زاویه شون زاویه فردی نیست به نظر ما این مطلب خیلی موثره. اون که منشه اشتباه شده اینه مثلا عبارت مبسوط و اورده در صورتی که در که ما چه زمان شیه یا تا زمان خود ما زالی بحث و فردی گرفته هم. یعنی حفظ کتاب زلال من توی خانه خودم کتاب و زلال رو نگه بدارم یا نه این یک عمل فرگیه این دائره فرگیه. اما رفتیم جنگ یک شهر گرفتیم یک کشور گرفتیم فرسون یک کشور رفتن فرق فرد کنن کتابخانه کتاب خانه مفصلی داره این کتاب اینجا کتاب ها این بحث فردی نیست این بحث حکومتیه خوب این زبایی ها اگر تحلیل می خیلی مؤثر بود مرحومشه بحث کتب زلال رو در بخش قناهم اوورده خوب دقت بکنیم بخش قناهم یک بحث بحثی که ما به اصطلاح بخش فردی داریم میگیم بخش دیگریه این دوتا رو ما باید با همدیگه کاملا فرق بگذیم مثلا نگاه بکنیم مرحوم شیخ مفید در مکاسب مغنه اغورده ببینیم زایه عرص شد اون چیزی که من احساس بونم در کلمات ها باید من میخواستم به همین این مطر مرحوم سیدی ازدی مرحوم آرکوی مرحوم آی روانی استادیشان بعدشون خیلی مفصل این مفصل رو بحث کردن لیکن این زرافت بحث که اصلا این بحث چطور در بین ما وارد شد و چه زاد در مغنیه مفیل اینطوره ولعجر و به کتب کتب المصاحف و جمعی علوم دین و دنیا جائز و ولا یهلو کتب الكفر و تجدید صحف الا لإثبات لخجشفی فساده و تکسب با به حفظ کتب زلال و کتبی علا غیر مازد کرنه این تکسب عنوان فردیه گناهیم گرفتیم گناهیم توش کتب باطل هست این عنوان فرم حکومتیه اصلا کل گناهیم در اختیار دولت اسلامی پس بنابراین نظر ما اینه که وقتی شما نظر دارم وقتی شما یک بحثی رو مقرح می‌کنید، اون زاویه می تحلیل بکنید کلمات رو الان مثلا خود علامه در بعضی از کتبش باز مثله حفظ کتبه زلال رو تو بحث قناعه بورده این کاملا نشون میده. حتی مرحوم شیخ در قناعه بورده در تجارت نه باز در نهایه در تجارت بورده این, این طور نیست که فقط عبارت شیخ در این کتاب بیاریم عبارت شیخ مفید رو بیاریم دقت بکنیم در حقیقت این عبارت باید تحلیل بشه یک دو مستریابی هم باید بشه خب زیر بنای عبارت شیخ توسی که در قرم پنجم بوده از کجا ما باشیم و کتاب مغنه بناهای عادتن عجر بایاته عادتن ما باشیم و کتاب محسود عادتا فتابای اهل سنته <تصفح> از کردم ظاهرا شیخت اونجایی که من خودم فندم اسم کتاب رو هم نیستم یکی از کتاب فقه شافعی رو گرفته فرع رو از اونها گرفته نتیجه رو به فقه چی تفتیق کرده این کتاب اینطوری بوده فرع رو مثلا رو اونا اونورند نتیجه رو البته خب شما می‌دونید ما در عده از ابواب سننیا چه ما با اوناش و اونا با ما بعضی از ابواب کلا در اصل با هم نیستیم خب قائل‌های فروش همه هم منتبیه قائل‌های دیگه مثلا اونا فروه موثع رو ندارن اصل که موثع قبول ندارن دیگه فروع برن. ما دیگه که موثع بریم ما متن بر خوف نداریم چون روی جوراب‌های چرمی بود که موزه می‌گه مثلا مثل چکمیه که ساغه نداره اون موزه می‌گه خوف می‌گه ما هم بر برخوف نداریم اونا فروع فرامونه دو محصه برخوف دارن خواهی این جور فروع رو یا اونا ندارن یا ما نداریم به استثنای این دو بحث بقیه فروع خب داریم مثلا بین کتاب خب دقیق کردیم پس بنابراین به جای این بحث دنبال این بیفتیم که چطور شد شیخ مفید و شیخ توصی از تن رو زوارد نشدن بحث دارم ترک میدم که فکر بکنیم شیخ توصی در کتابی که ما عددس برای نقل روایات این مسئله رو آورده از اون طرف هم ما میهیم تو روایات نداریم تکست به امزه کتاب و زلاغ نداریم عنوان رو و و کتبوهو یه انامه ما تو روایات نداریم و لذا اگر خوب فکر بکنیم این عنوان در کتاب شیخ صدوق نیامده علمای ما فقط عبارت میرن ما به نظرمون هم باید عبارت رو آورد هم باید تحییدش کرد هم باید زیر وناهاش پیدا کرد هم اونایی که نیاموردن باید حساب کرد نیاوردهاش هم باید بخونیم مثلا شیخ صدوق این عنوان نیامورده مفروض کلامم این است که کتاب مغنه و کتاب به اصطلاح کتاب نهای شیخ توسی فرقاواشون از روایاته اینجا اگر مطلب روشن شد روشن شد چیگوری وارد بحث میشین آیان اونه که اوگردن تر کنیم فقط مفسود رو مثلا بعضی دیگران نیماندن تحلیل رو کن وقت این مشکل کجا برد پیدا میشه بعد میاد اون مسئله دعوای اجماع شده اینا رو دعوای اجماع تو آمدن آقای خوی گفتن من مدرکی کلا اصلا معلوم میشه که این مسئله اصولا در از مسادر طرح نشده تو مکتب قوم ترح نشده اصلا مسئله اجماع مطرح باید خود شده خود مثلا همین مسئله اجماع رو بعدها ها چون مرون شیخ نمیشن استاد نوشتن و دیگران مثلا صاحب هدائق به شدت حمله کرد قبول نکرد گفت دلیل برایشون بین علماء مشهدی و مشابه اساس نداره این حفظ فتوه زلال دلیل برش نداند که حرام باشه چه دلیلی برای که حفظ فتوه زلال حرام باشه درحقیقه این کی شد این قرن نفرستون 12ام شد ما براتون بر ریشه را کشیدیم در قرن سوم چهارم و پنجم معلوم شد ریشه مثلا در قرن سوم و چهارم داره ریشه در کنه دوازدهم زام نداره پس ببینید ما توی بعضی از مسائل اگر اون تحلیل تاریخی رو, رو انجام بدی نه به اون مقداری که مرحوم شیخ یا دیگران یا این آیه فاضل محاصره رو اینقدرش آورده لكن اصل به آوردن تنها مطلب حل نمیشه با اون تحلیلش خب این سوال پیش میاد مبسود و معذر میخواه مبسود که واضحه اصلا واضحه یه فن حکومتی است واضحه از رو اهل سنت بحث حکومتی هم هست بحث جنگ و غنائم و که خانه یه فن کتاب رو چکار خواهد اصلا ممکن است در اونجا بگیم چون بحث حکومتی حکومتون در یه جه محصول نگرداری بکنه بحث رو عوض بکن ما یک زاویه فردی داریم یک زاویه اجتماعی حکومتی داریم. که متاسفانه هستم با این که اینا هاون تکیلی در اینجا زیاد دادن این دو زاویه رو بخص نکردن فقط عباد که در مخصوب بردن بعضی هم عباد شیخ کن در کتاب نهایه از کردید اینا چون دو تا مبنا داره دو تا زیر داره این باید دنبال ریش های تاریخیش بریم مثلا اگر فرصم احتمال بگیم اون روایت احرق کتبر، این زیربنای بنا تاریخی باشه خب باز مخصوص می بینیمش لا یهل يحل و حفظ کتب و بلی یجب و احراق ها اگر یجب و احراق ها میگفت میفهمدیم ناظره با اون روایت دقیق کردی اگر میگفت یجب و احراق ها این چه ش... میفهمیدیم که ناظره با اون روایت اما میگه لا یهل و کتب و حفظ و تجلید هیچ رفتید به احراق کتب داره پس این رو از کجا ایشان امرده؟ این نقطه مهم اینه و قطعا باید یک نقطه ای باشه خوب دقیق رو کنید زرافت کار چون آشنایی با فقه اهل بیت قیل از اینکه خود اهل بیت بر اینجا ده انتقادات بردن از خود مکتب اهل بیت برای باید بیت یک چیزی هم به نام فقه فقهای های بیت داریم قیل از خود اهل بیت اصلا فوقهای اهل بایداره یک روش های خاصی هستن یک سیر معینی داره یک نکات معینی داره خب ما میبینیم محطب وغداد شیخ مفید و شیخ تونسی این بحث در کتاب فهی که با عنوان کتاب موتون روایاته اووردن در مکاسه شیخ صدوق هم نیورده خب این خیلی واضحه که شیخ صدوق چون متن روایاتی نیست چون مطن نیست شیخ صدوب آورده اگر مطن باید چطور شیخ مفید آورده این ما اصطلاحا میگیم حلقه مفقوده یه جای اینجا کارگیر داره اگر مطن باید بود سراحتا شیخ صدوب هم نبود. اگر متن نیست اگر متن نیست چطور شیخ مفید و شیخ توسی آورده خود ما تحلیل ما اینه البته حالا دیه قبول تحلیل شد نه هنوز وارد بحث بست قبول تحلیل وارد اردم تحلیل بادم فکر نور مساله قبولش با احده شماست خود ما اینه که اینا این مطلب رو از کتاب سوحف الاغول در حقیقت فهمیدن از سحن روایت سوحف الاغول من هر کلم شاهد سابقنم شواهدی موجوده که مرموم شیخ مفید و شیخ توسید ای با بطاله از اون رواهت مفصلت و عفل اقوی گفتن فتوه دادن ولذا اون مطلب در عبارت صدوق هم نیست اما در مقنعه و نهایه هست شواهد صادرش هم گذشت مثلا لای اجیز و بی اون نجید ما لای اجیز و بی اون نجید در رواهت نداریم شیخ صادوق هم اما شیخ سوسی اوورده چ... چرا؟ تو این جز بره باید سوحب الاغول این جز بره باید سوحب الاغول این که حدیث اهل الاغول یکی اصلی در شیعه داشته این جایی نیست این که حدیث الان کلن در مسادر ما موجود نیست این جای انکار نیست ما به تو اهل الاغول که از کلم شواهد خیلی واضح نشون میده در میانه های قرن چهارم در میان های شام همین یکی الان به اسم نوسیری هستند در اونجا کتاب در تدوین شده از نویسنده کتاب مرد بسیار مлла منابعش واضح و به استثناء ادی از موازه منابعش نیست غالبا منابعش قابل شناخت است و بسیار مرد دقیق حساب نیست به های میراث‌های علوی‌ها نیست میراث اون خیلی طرز داره خیلی تحلیل داره خیلی غلط داره خیلی پرط و پلاست انصافاً چند تا که من تا الان امیر خلیسون اطلا نده خیلی مقدارش کتاب که حتی بعضی از کتبشون ابوالیش تلف خیلی فرق و فلا اما این کتاب بسیار کتاب دقیقی است مرده مولایی اصول حدیث هم مسلطه مثلا چون در ما به احتمال اونی که ما قدیمی می اصلا نسخش نیامده بوده اصولن علوی هنوز هم که هنوزه چهواد بسیار پنی درسته، چیش درسته از مسادرشون چاپ شد اصلا کتابشون چاپ نشده هنوز هم تکتم دارد یعنی علومشون کتمان می کنن یواش شواش فسن مثلا کتاب های حسین نحمدان این علیه حدیاتو کبرای حسین نحمدان مثلا فسن ده سال و پونزه سال چاپ شد و اینکه مهمتایی مستر اون از یعنی حسین نحمدان حوزینی عقل متفکر نسری ها حساب می شید حالا غیر از سالای ج همین کتاب اصلیش که قدرت الکبرا باشه که خب اونم واضحه که آثار اطلاع تراطیش خیلی بالاست اما ضعیفه خودی ضعیفه میگن ابن فوق بشا گیا دیگه اگر شاگردی ایشون هم باشه کتابا رو از استادش گرفته کتابا رو خوب نخونده استاد به کرده انصافا شاگرده به مراتب از استاد بهتر نقله کرده حالا جش بحثش عربی بودنش از کتاب واضحه شما از گذشته اون خبر ندارین از کتاب بازه نیست اما ظاهرا به این اونا زندگی میکردن اونا جزء خودشون من در یک کتاب دیدم که الان در لازبیه که مرکز عربیات ادعی از مشایخشون کل تو اهل غول حفظ دار من چون از جزیدم ندارم از لازبیه های وهبی شاد چه عجیبه بنظر نمیاد که کل تعامل و امور و از مشایخ نو سویی ها در لازبیه حفظ دار اصلا حفظ, حفظ کردن کله در میان کتاب‌های ما هم کتاب خوبیست نه فقط کتاب علمی در بیان اون که فوق‌العاده است میگه تاجه سرسره‌شون چون برای یک کتابشون واقعا خدای و استادش بسیار در آورونه کاملاً مخلص مخلص خود اما نیست که کتابای با هم کتاب من باز این بحث نشم الان خیلی من نمی‌خواستم باز این بحث حسی یک بحث, بحث سابقه تاریخی بوده این یک ما غالباً در مسائل فقهی بیشتر به همون قدما اکتفا می‌کنیم تا مثل زمان صاحب شرایه چون بقیه دیگه تقریبا طبعیت ایشان کردن تقریبا دنباز روی ایشان اما توی این مسئله به زاد غیر از صاحب شرایه مثلا ببینیم این مسئله اولا توسط شیخ مفید و شیخ توصی گفته شد بعدها طبق همون قاضی که ارز کردم و تا مدت افراد مقلل شیخ بودن میگن بعدها توسط تعلمه ادعای اجماع شد ریشه اجماع اینجاست ما معتقدیم برخورد ما با اجماعات اینطور نباشه علی اجماع مدرکی یا محتمال اون مدرکی لایه محتمال داره مخالفان صاحبه داره پس این اجماع هم محقق اصلا بیارم اجماع چرا درست شد اصلا درست شد اجماع دعوای اجماع رو کی انجام داد من عرض کردم کناره این دیگه الان نمیخواب بحث بشن که تون و بحث اجماع توصول مفصل موند اجماعات در میان شیعه تاریخ داره اینطور نیست که همی سر به هوا باشه در میان نه هم تاریخ داره در میان شیعه مثلا ما در مقداری از روایات دعوای اجماع به مالا خلافی بیان مسلمین. اون یه اجماعه که از کلمات خود احمه آمده یک شر بیگاه من بازون بحث میشه یه اجماعاتی در مکته بغداد مثل سید مرتزا و برن زهر و دیگران داره یه اجماعاتی توسط مثل علامه مطرح شده و بعد از علامه ادهی گفتن که چون قداسات علامه اختیزا کرد گفتن اده آفیه اجماع اده آفیه لجوم یه اجماعاتیست که در حقیقت از زمانهایی مثل سابجواره به بعد که یک از مجموعه اجماعات لیه مثلا مراجعات شخصی خودشان این اجماعی که در مسئله آمده فرصه مثل سید و مرتزا در کتاب فقهی خودش متعرض این مسئله نشده ادعای اجماع هم نکرده اجماع هم لاقل ها ما مده اجماع ما مثل اندامه است. از کردیم این سنخ اجماعات به طبیعت حالش این طوری بوده فرع و شیخ توصی یا شیخ محسن شیخ توصی مطبخ کرده میگن یعنی تا سال مخلد شیخ بودن اونا هم این فرع رو آوردن و خطوا دادن من نگاه می‌کنه می‌بینه کسانی که مثل شیخ طوسی و شیخ مفید، اولدار همشون با ایشون موافقت کردم میگه اجماع است. ادعای اجماع می‌کنه. از اون بر مبانی اصحاب در حجیت اجماع بر این شد اجماع اینطور معنا کردن که حاصلش حالا اون نقطش باشه من اجماع یعنی اتفاق مقداری از های شیعه که کشف بکنه قول امام رو. پس اجماع مجرد اقوال نیست حالا حتی اگر اقوال تمام علمای شیعه باشه یا 90 درصد یا 80 درصد یا هفتاد درصد اینا در شیعه اینطور گفته این اقوال باید به یک گونه ای باشه که یک رابطه‌ای با قول امام پیدا بکنه روشن شد باید یک نحنی باشه که رابطه پیدا بکنه ما اگر بخوایم رابطه پیدا بکنیم همون زمانهای نزدیک مثل شیخ صدوق و صدوق پدر ممکن رابطه پیدا بکنیم سال 700 800 که رابطه پیدا نیتونیم بکنیم وقتی ما فهمیدیم که شیخ صدوق مسئله رو نیابرده بیر عنوان در روایات نیامده چطور میتونیم با یک اجماعی که علامه ادعا کرده این خوده بکنیم با این اجماع رابطه بایمان با پید رفتش اول کار به مدرکی <laughs> <تصحیح> یعنی من معتقدم همچنان که الان در علوم سعی میکنن از راه برهان لنی وارد بشن نه اینی. من معتقدم در امور اعتباری هم همین طوره البته ممکنه شو میگین در اعتباریات علت و معلوم نیست حالا به جای برهان علی و معلولی بگیم ریشه ای کار کردن نه ظاهری بیاییم ریشه های اون اجماع رو پیدا یا بیا تعبیر دیگه یک نظر از بالا بکنید نه اینکه وارد مسئله بشیم بعد توش گیر بکنید که این اجماع اصلا سیر مسئله که روشن شد تاریخ مسئله که روشن شد ارزش اون اجماع هم روشن میشه ما وقتی فهمیدیم اجماع در بغداد یک معنا داره اجماع مافی که علامه یک معنا داره اجماع بعدی مثل صاحب جواهر اینها با یک معنی دیگه گرفته معنای این چیه یعنی یک ارزش دیگری مثلا صاحب جواهر مراجعه به ارواح کرد پیدا نکرن خب یک جور نتیجه گیری میکنه این از اون طرف هم شما ما گفت این گفتین اجماع فی حجیت نداره باید رابطه داشته باشه یک نحو رابطه یعنی یک جوری باشه که ما بتوانیم از این اجماع بگیم قول امامه حالا شما که الان سهر مسئله رو مثلا دیدید آیا میتوان از اجماع علامه در قرن هفتون و عوال قرن هشتون مثلا چون ایشون هفتاد و و حالا قرن هشتم. از قول علامه در قرن هشتم یک رابطه با قول امام پیدا بکنید ما به جه این بحث که آیان من دید نمی خواستم بگم شما خواستم کلمات های خوبی رو بخونیم بحث هم وقتاً تقوی شد فردان شد کلماتی شد ما معتقدین تمام اینها قابل ریش یابیه و شبیه بحث های اگر بحث ها نحوه بحث های باشه خیلی بهتر تا بحث های باشه عبارات و قدما مخصوصا تحلیل بشه و این تحلیلاتی که الان مناقشاتی دی ابتدایش در کلمات ما از زمان جامال مقاصد شروع شده اوجش در کلمات مرحوم محقق اردبیدیش اون خیلی بحث کرده دیگه از زمان بعد از محقق اردبیلی رو مسئله کار شده و صاحب هداره هم با سوال آزادی رو مبنوی خودش. و البته صاحب این تفسیر ما رو مفتر تک کرده لیکن انصافت اگه انگاه مخونی صاحب هداره استمرار شیخ صدوقه یعنی <تصح> خیلی بعضی از آنم دیدم تن شدن به صاحب هدار در اینجا. چون صاحب اینجا که بیت شده با آنم به اوناتون نه این از عزیز رحمت الله انصاف قضی اگر تحلیل بشه، امون که این مطلبیشان ریشه داره اینطور نبوده اون ریشه این بوده که چون این عنوان در روایت نیامده ما باید برگردیم به اناوین اولیه هم موجب موجه موجب گمراهی اینا اما حفظ کتب و زلال رو به عنوانه نیمیشه مسئله فقی قرار بدید این خلاصه هیش. پس تا الان تا اینجا روشن شد اجمالا ریشه های بست همون وارد نشدن اجمالا ریشه های و نهره ورود و خروج در بست و صلی الله علی محمد و آده هموند